بسم الله الرحمن الرحیم سخنرانی مرحوم آیت الله حاج میرزا علی فلسفی موضوع سخنرانی امامت جلسه 17 ام الحمدلله رب العالمین الصلو و و و الله عز وجل خیر الله و از امامت سنت لا مذهبی نظر، موضوع بحث ما مطالبی زیاده مطلب اول این او هست که ما در بعد از قیبت امام علیه السلام و السلام به کلی بعد از رسول خدا و واله در امر دین باید به کی مراجعه کنی و از کی اخذ بکنیم. پیغمت والی واله وقتی که حیات کن خوب وزیفه اخس کردن از او بود و ما افصال ما مردن رسول الا لویخا از الله پیغمبر برای این رجی شاید این پیغمبر رو ما نترست دادیم مگر برای اینکه مردم از او اطاعت کن و هیچ پیغمبر و نه پیغمبر ما هیچ پیغمبری رو ما نفرستادیم مگر برای این که مردم از آنها اطاعت کنند. دستور اونها نافذ و واجب الاطاعت است. در امر دین مطلبی بگویند باید پذیروف. در اموری که مربوط به جامعه مسلمان باید پذیرفت؟ در امور شخصی حتی اگر به شخص خاصی، دستوری دادن واکر است و روی که اطاعت کنند. فریح در لبینه و خالفونن امره انتوسی به هم فتنه و دوسی به عذاب و علیم بیترسن کسانی که مخالفت می کنن امر رسول خدا سر و واحده را که عذابی بر آنها نازل خواهد شد بنابراین تا وقتی که پیغمبر علیه و آله زنده بود وظیفه همه بر طب قرآن شریف معلوم بود که باید دور رو کرد احکام را از اون سآل کرد آیات را، بیان آیات را از اون خواست در امور اعتقادی اگر اجمالی در آیات موجوده از اون شرف و تبصیلش رو خواست وظیفه همه این بوده است این مطلب جای تدبیده یشکس از سنی و شیعه نیست. که در زمان رسول او مرجع بود برای همه‌شون. ولی بعد از زمان رسول خدا سوالی واله وظیفه کیت. به کی باید رجوع کرد؟ از کی باید پرسیم؟ مسائلی که مورد حاجت جامعه است از کی باید سوال کرد؟ آیا کی را که در قرآن مجمل است که خود قرآن می‌گوید منه اولاتون محکمون و ام کتاب و اخر متشابهات و هم نزدین وقتی قلوبهم زاین و کن فیتبعون متشابههم کسانی که در قلبشون زیغ هست و انحراف است و کجی است متابعت می‌کنند از آیات متشابه در قرآن عموما باید این معلوم کنیم کدام آیه متشابه است و کدام آیه مبین است و محکم است و ما باید معین کنیم که متشابه را که خدا می‌فرماید و ما یا علم تعویل او الا الله و راسخون فالعلم اونها در بابه ای آیات چی میگن و راسخون در علم کیا هستن اینا رو ما بفهمیم بنابر این ما میخوام یعنی شیعه اعتقادش است که بعد از رسول خدا صلی الله علیه و مرجع برای امر دین برای یرفتن احکام برای تفسیر آیات برای اعتقادات صحیح در امورات مختلفه از مذهب و معاد و غیر زاله همه اینها را باید رجوعه و انه احل بیت کرد مذهب شیعی مذهب سنیا در احکامشون که من بلدم چهار مذهب دارن هنفی و مالکی و شافعی و همبلی هر کدام یه فرقه ای رو انتخاب کردن و اونم خدا رحم کرد که در زمان نمیدونم کدوم یکی از خلافا بود دید همینجور در فرقه درست میشه ممنون کرد که غیر از این چهار فرقه احدی حق نداره فتوا بده و اگر فتوا دار کسی عمل کنه لذا جلوی اختلافات رو گرفیم من به خدا رحمتی بود من که یادم نیست بل اعلام كلهون اونی که الان موجوده در خارج شما طایفه است ما کسی اشی ادام باشد اعدام میکنیم خدای تعالی طریق را برای ما معین فرامنده و برای ما کجا بریم و از کی بیم، از کی بگیریم هیچ و ما ابهامی و این مطلب اساسی ترین مطلب مذهبشی است هم از راه اثباتش بسیار آسان است اثباتش و هم اگر این ثابت شد قهران تمام روایات سادره از ائمه اگر به طریق صحیح و معتبر باشد حجت است و بر همه واجب است اطاعتش و اگر این درست شد باقش درسته مطلب این را که الان از میکنم و البته بعدا هم باید تکمیل بشه دور باید الان در نظر است که از می‌کنم و این دور باید سنی و شیعه نقل کردن این دور باید را از رسول خدا صلی علیه و حاله و پیمان من این دور باید رو فرمونده و در اقلب کتب حاله این روایت موجوده مثل صحیح بخاری و صحیح مسلم و نمیدونم ترمزی و فلان و فلان که من کتاباشونم خیلی وارد نیستم و بلد نیستم غلم هایی که نرد کردن از اون کتاب ها با صفحه و شماره کتاب های معتبرشون نقل شد. یکی از اون که همه ندید و میدانی روایت حدیث سقلینم حدیثی سحرانی رسول خدا فرموده است که من دو چیز سنگین و دو چیزی گرانقدر در بین شما میگذارم که اگر به این دو چیز عکس کردید و این دو چیز را مطابقت کردید هرگز از تمسک به من به مالا ابدا هیچگاه گمراه نخواهید شد و این دو چیز امانت از کتاب خدا و اعتراف من است در بعضی از روایات تعبیر به اعتراف شده در بعضی از روایات تعبیر به اهل بیت شده این دو راهی و دو طریق است برای رسیدن شما به سعادت ما این تمسكتم به ما لن تذلوا ابدا تا اینجاش را شاید اغلب سنی ها نروکردن یه زیلی هم در بعضی از رقایات سنی موجوده که از مشاهد به این که لند از تغ... لوعه لن دا و انه همه لند یک حتی یه دا کتاب و اطرت از هم جدا نخواهند شد مگر این که در حوض کوسر زمانی که در حوض کوسر بر من وارد شد یعنی اطرت من از قرآن جدایی ندارم قرآن از افتر سرائی ندارد بنابراین این چنین روایتی رو طرق بنده که مهیا بیرم البته نوشتم الان برای تو میکنم را که سنیا نهار کردن یکی و دوتا و تا و, ده تا, و تا نیست حدی چه حال داره یا داره،, داره مراجعه کند به از شد القدیر مواجهه کند به اون کتاب اون بزرگوار که اسمش چیه اوغاق اون بزرگوار اینها رو با سندها بود بباره و سفه بعضی هاشون البته شاید مرفو ما امینی با سفر و نمره زبط کرده اینها رو بعضی های هم به دول سفر و نمره ولی علاقه کل حال موجوده یکی و دوتا از میکنم دهت و ست و که خیلی کتاب رو ندارن و کلی در دست نیست این روایت رو از روی کنزل امال که یک شهرستیز از کتب اخبار سنیا شاید الان می کنم براتون ایس مورد تجا کردم شوید با کمزیادش می کنم الان معلوم نیست اما کلانی همچی روایت است که کسی نمی کنه بگه این اینجا خط داره اون گوشش به قول ما است افداره نه این چه می و این روایت رو مو در مو از رسول خدا سوالی و حاله نقل کرده هم در مورد خطبه قدیر این روایت رو فرموده هم در مرز موت فرموده هم نمیدونم طائف پیغمبر رفته بود برای چه کاری بعد از مراجعه از طائف فرموده نمیدونم جنگی بوده در اونجا و فتحی شده در اونجا نوشتن بعد از مراجعت از پایف این قضیه و این از ازمیشت خطوهی خونده و این جمله مثلا درش بوده و همچنین در مرز موتش بیقم این رو خواهیت رو فرموده و موارد مختلف یکیش رو که بنده ازم میکنم الان همونی که در مرز موتش فرموده است بقیه هم از کردم شدیه رو همینه یه مختصر تفاوتی که یه جمله زیادتر داره بعضی اون جمله رو نه در مرز مود که رسول خدا فرمود فرموده یه ناس یوشک و انعق بزه قبضا سریع من انقریب قبض روح می شوم و بین شما می روم با سرعت به زودی خواهم رفت همی مخلفون فیکون کتاب کتاب ربی و اطرتی اهل بیتی من کتاب خدا را و اطرتم را که اهل بیت من است در بین شما می گذارم سمه اخ عزبید علیه السلام در حضور جمعیتی که تو منزل پیغمبر در عیادت پیغمبر بودن امیر المؤمنین جمعی از اصحاب اونجا بودند. و اخذ بید علیهن فرفع دست علی رو گرفت و بلند کرد قال هازا علیون مع القرآن و القرآن ما لا یفترغان حتی یردا علي الحوز این روایت را سبائب که ابن حجر باشه از علمای متعصر سنیست که یک کتابی در شعن معاقیه نوشته بود خیلی معاقیه رو تعبیل گرفته بود گفته این کارایی که بر ضد علی کرده است درست بوده همه و خلاصی آدم کذا و کذاییست این روایت را آقای سبائف که من در شد دیدم نقل کرده یه زیلی هم تتمه داره مود علی و من القرآن و القرآن و من علی لای حتی یر علی بلا تو قدزمو فتح لکو بر قرآن و اطرت من تقدم نجوید که حلاک می شوید بلا تقصرو بله تقصر انهما فتح لکو کتاه نه و دوری نکنید از او که حلاک می شوید. ولا بلا تو علمو هم هم اعلم من کن. به اهل که من چیز یاد ندین اونا از شما بیشتر چیز بلده این روایت با این تتمه در کتاب سوائق محرقه مال ابن حجر صفحه هشتادونو البته این کتاب های سوائق های متعدد و بیردالک شده این چاپی که بنده دارم صفحه هشتادونو سوائق محرقه یعنی سائقه سوزنده اسم کتابشه خیلی خوب این روایت رو ذکر کرده بزرگان تر مودن 27 نفر از اصحاب رسول خدا این روایت رو نرابی کردن باشه اون اصحابی که بلا واسه در سیغم برسنیده بودن اونا رو ذکر کردن بعد اونا به طبقه دوم بون گفتن اونا به طبقه سوم گفتن اون وقت ها روایت شده یا باشه باشه علا 27 نفر از اصحاب رسول خدا این روایت رو نقل کردم هم در روز عرفه در حجت الودا فرموده هم روز قدیر فرموده هم بعد از رجوع از طائف فرموده هم در مرز موت فرموده این روایتی که من خوندم در مرز موت بود بقیه شم همین مفاده شاید اون جمله از می شود من که لا تو علمو هم فا هم اعلم من کم تو همه روایات میست اون جمله دیگرش هم تو اکثرش هست که از می شود ما این تمسکتون به ما لن تزلو ابدا الا کل لا تو قد هم فتول لکو ولا تقصرو انهما فتول لکو. و لا تو ولو فا انهم اعلم من کن این روایت این روایت از کردم که این روایت از می شود در کتاب سبائق دو جای سبائق این روایت را نقل کرده ولی از کردم من که کتابای سنیان رو ندارم تو که حاکم که پیدا کردم صفحه 148 جلد سه مستدرک حاکم ولی در کنزول امال که فهرست کتب روایات سنی الان برای شما همین عدداشو تونتون میخونم شما خودتون بشمال این آخر سر چند تاست من اینا رو پیدا کردم شاید بازم غیر از اینها ها باشه سر همه این روایاتی که میخونم تو جلد اول کنزول اماله صفحه 872 873 898 870 819 873 898 از شما صفحه گفتم اشتراه کردم شماره حدیث اینا صفحه های نیست شماره های حدیث از از حدیث شماره داره صفحه حدیث 898 از شماره 943 تا 947 از شماره 951 تا 53 شماره 958 957 در صفحه آخر جلد اول 949 951 سروایت شماره 1650 1657 1667 اینا همه تو جلد اول بود یکی دیگه هم در یه جای دیگه برخورد و کردم حدیث سی و و, سی و چهل جلد سیزدن کنزل امام هر چندو شد بعدم بشمارید و این آقای کنزل امام که روایات رو فهرست کرده یه روایت رو میکنه از پنج کتاب که کتاب پلان فلان پلان پلان پلان پلان پلان نیست دعتا نیست اینا خب کدوب از کتاب های مختلف نقل کنه بنابراین این دون روایت ما که سنیه شیعه نقل کردن دیگه طرق شیعه این روایت چقدر نقل شده او روایت به بحار مراجعه کرد به القدیر باید مراجعه کرد که چند سند و به چند طریق این روایت نقل شده الا ماشا الله حالا کلا شد نتیجه تنجا؟ فرموده است کتاب و اصفت من از این ندارن اگه بخوای زلالت پیدا نکنید به هر دو عقص خون اگر به هر دو عقص نکردی زلالت و گمراه و نابدین که میگن ما به قرآن عقص میکنید ازمی شود نیم که متابقه این باید بگم و فرموده گمراهی چون. زالید شما راه وزی رفتید اون چرا که مطلوب خدای تعالی و مطلوب رسول خداست شما اون راه رو می من الان یادم نیست ولی احتمالاً از میکنم در یه بند خدای از شام اومده بود که با حضرت صادق سلام و علی مباحثه کنه در امر امامه از سادقم فرمود بعضی از اصحاب که با اینا مباعثه کن و با اینا یقوده مباعثه کرد و بالاخره منتعی شد اما به هشام که با این هشام مباعثه کن به هشام که مباعثه کرد از می شود اینکه خوشام ازش سوال کرد آیا خدای تعالی بهتر میداند داند مسلحت خلق را یا خود خلق بهتر میداند داند مسلحت را. شاید نسکردم شاید خصوصیاتشو پراموش کرده همشون در ذهنمه خلق را خدا بهتر میداند یا مسلحت خلق را خود خلق بهتر میداند داند این آقای سنید و مسلحت خرق و خدا بهتر میدونه. داند که شانوشان پرسید بعد از رسول و در زمان رسول خدا معلوم بود باید به کتاب خدا مراجعه کرد و هرچی کم داشتیم و نتونستیم از قرآن استفاده کنیم به رسول خدا مراجعه کنیم تا اینجا معلوم بود و بعد از رسول خدا باید به که مراجعه کنیم گفت به تو خدا اون قرآن گفت آیا این قرآن اشکالات ما را رخ می کنه و ما را سر یک کلمه با هم متحد می کنه و همه اون اختلاف من از بین می ره یا نه بله قرآن بود از همه موظفم به قرآن رو جو پس تو چرا از شام را افتادی اومد اینجا با ما دعوا کنی با ما مباعثه کنی معلوم میشه قرآن به تنهایی صلاحی یا نمیشه نمیتونیم ما یعنی نمیتونیم نمیشه بعد از قرآن اینگونه استفاده کرد که اختلاف بین امت رو برداره اینسون میره گیری گفت چی باید اختلاف برداره این سنیه خود فکر کرد دید نمیتونید جواب بده خب خب همین سؤاله رو من از سنو میکن رو این برگردون خب از زمان رسول خدا که چنین بود بعد از رسول خدا چی باید اختلافات رو برداره او وحن بجره ومبر و پیغمبر تحییم فرمو کرده و از خوجه میگی شروع شد خلاصه به مباعثه حالا من نکاری ندارم اختلافاتی که آخر اگر نظرتون باشه اون وقتی که مشروع کردیم به وحث نموهش از کردیم از قرآن شریف استفاده میشه که هدف پیغمبران فرستادن پیغمبران چیه؟ برای چی پیغمبران خدا فرستاده؟ از کردیم از آیات شریف قرآن چندین مطلب به عنوان قرز از وعثت به بیان شده یکی از اساسی مطلب لیاه کنه به این ناصفی مختلف و ما پیغمبرها رو فرستادیم که اختلافات رو برداره حالا خود این دین منچه اختلاف شده چه باید بکنیم؟ بنابراین اگر بنا بشود که تعیین نشده باشه وظیفه به کسی که مرجع و مرجع ما باشه برای رجوع کردن اگه خدا تعیین نکرده خود اینی که فرستاده بود رفع اختلاف کنه چه اختلاف شده بنابراین این قدرت دین به رفع قره از, از که ارسل و معمول کتاب ریقوم ناسه و لحکو با بینن ناسی و فی این برای رفع اختلاف و فرستاده بودیم رفع اختلاف که نشد اختلاف یدیدی هم پیدا شد اگر بنا بود که کسی رو تعیین نکنند برای حکومت اسلام معصومی را تعیین نکنند، اون مدهش دوبومیم و بمیره ارسل آمه اون کتاب رو برمیزان لیقوم و ناسوب و مخواستیم عدل بین مردم جاری بشه کجا عدل جاری شد و که عدل جاری می شود؟ و قوم همه قلزهای پیغمبران از بین رفت و میره بنابراین یه فردی باید خدای تعالی معین کنه که مبدع و منشه باشد برای مراجعه مردم در دینشون که قول او مانند قول رسول خدا متبع و واجب العمل باشه فرمان دستور او مانند خدای تعالی و مانند رسول خدای تعالی و العمل باشه و این معصوم باشه که خطا نکنه نعصیت نکنه گناه نکنه مردم رو به نفع خودش برای یه جهتی تشویق نکنه احکامی که بس ضرار خودشه الغا نکنه اینا رو باید کی بکنه اونی که خدا تعین کرده میتونه همین کارا رو بکنه و یه معصومی رو معین کرده ولی هماش از بین میره بدین شرائط کنون کلی از شرایطی که از اول پایشو گذاشتن امجوده رو میان به هر مقصود ارزبنده این است که پس بنابراین خدای تعالی و تیغمبرش راه برای مسلمان رو معین کردی رفع اختلاف رو معین کرده هرونه رفع اختلاف بکنی و به این ها جو بکنی و این مطلب مطلب روایتی است که عرض کردی و تتنهی مسلمان شاه راه برم این روایت از کردم سنوشی این روایت رو نقل کردم و در کتاب معتبرتون می ها موجوده و از در روایت رو کسی حالش داره یه طرق مختلفه ایراکه باز ارگان ما زحمت کشیدم دونه دونه کتابای نشستن خوندن می شونم و روایت از کتابای اونا در موردم این رو پیدا و در دسترسش باشه اگر یه وقتی اتفاق افتاد بدونید چی خیلی باید این مردم دهید خیلی ای راجع این حدیث بلا فیلم بس تا بعد خواهد اللهم سلام